با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان تلویزیون رنگ کمان بخش بیست و دوم گفتارم را درباره کسوی شروع میکنمد در بخشهای قبل به آنجا رسیدیم که کسوی در سال 1309 از ادلیه آمد بیرون ولی گفتیم حالی خلاصه تکرار میکنم که ولی به لحاظ اینکه با ادلیه در افتاده بود و با دربار در افتاده بود و چون دفتری داشت دفتر وکالت دعاوی که تعطیل نکرده بود میخواست بره اونجا برای زندگی و معیشتش کارش رو ادامه بده ولی ادلیه باید اجازه میداد که نداد از خوبش در این فرصت داور از ایران رفت به اروپا برای حل مسئله خدمت را از که نفتی که اونجا اتفاق افتاده بود حالا در این فرصت بیان این تاریخ چیه این نفت رو در دوری رزوشاه ندارم چانشین دابر و رامینامی که با جسدی رابطه نزدیکی داشت اجازه ایشون دفترشو کار بکار کنه و شروع کرد سال هزار رو بازدن منطقه ما میدونیم که در سال هزار و کارهایی حالا بخی از کتابهایی که تا کتابها حال تحانش رو گفتم بخشهایی دیگه ولی ندادم فرصت داشتم این دوستان عزیزم بینندگان گرامیم سال 1309 ما, ما دیدیم که خایی رو مطرح کرده نوشکه منتشر کرده دیگه از 1312 ما دیدیم که کسرابی هیچ اثری نیست که هر روز و هر هفته مطلب بود مطلب در سال 1313 هیچ چیزی از کسرابی نمیدیم بنده حدس میزن که اولا احتمال دوندگی برای واسف دفترش و اجازه وکالتش رو از عدلیه و در این حال به گمان من یک تعاروز عمیقی داشت در قیدیت مبارزات اجتماعی کسی و این تاریخ اجتماعی که در عدلیه بود که عدلیه در این تاریخ با فساد مبارزه و عدلیه کارش با فساده با قاتلان، با دوستان، با کشان، با کسانی که سو استفاده می مبارزه می کرد ولی از این تاریخ به جایی وارد جامعه شد و با در جامعه مبارزه میکنه. با چی که ناهند در جامعه قلم سخن میگوید. این مبارزات اجتماعیش به پس از سقوط شاه و پیدایش مذهب دشتر و گروه های سیاسی دیگر کسری فردادش بالاتر شد, تر شد، خواهیم رسیده از این تاریخ به که کسیری دخترش رو دفتر رو در دو جبهه با مبارز شد از طرفی نشریگه خیلی آه. آره پیمان رو پایی داشت که مطالبش رو مطالب اطراسیش رو خودش می نوشت از روی کتاب هایی منتشت این کتاب ها گاهی خود از سخنانش بود قلب بود و گاهی هم سخنانش رو قلمش رو و مقالات که نمی همین نشی پیمان به صورت گذرهای بروز بود داره. بنده از میکنم که تا اینجا این کتاب ها من اشاره کردم تاریخی شیر رو دستم کنم که گفتم براتون این که من در اختیار دارم زورتون چاپ دونزدر سی و سین چاپ انقلاب خدمتون از کنم که نامه نام شهرها و دیگه ها خدمتون از کردن که در تاریخ 1370 و هفت سال اداره با گروهی به قرب ایران آفرت کرد و در آن گفتم حضورتون که شاعر نامدار مملکت ما آشنا دوستی پیدا کرد و بعد در این مسافرش استفاده کرد و نام, ها نام های چهرها و دیعه ها رو بسکی کرد کتاب گفتار نخستی من تاریخ نمی بینم در اینجا تا بگم که کتابیست بدون تاریخ مونه. ولی خب این کتاب نامهای های و دیعه هاست که از این از این پژوهش به شناسایی خامه‌های بوستایی ها وقتش برد که آیا اینا از نظر تاریخی بگونه هستند آیا به مست... واسه مثال باخی بود که در ز... زمان قبل از اسلام باقی مونده بود و اینا رو بررسی کردون به جلوب بود که به دست توکن ساخته شده به دست گوردار ساخته شده بود به اینا رو بررسی کرد باید خدمتون ارز بکنن من در این بخش باز هموزورتون خواهم گفت در بخشهای گذشته از این سخن گفتم کتاب آن دو هزارت و, سی و باز قبل از و خسنش در اینه که باید که در قبل از این قبل کم تر به زیر تیغ سانسور شیعیان رفته و کتاب که می شود دودی اعتمار کرد کتاب های دیگر رو هم من در فرصت های که در اینجا گذتم خدمتون معرفی خواهم کرد تا که من رو ادامه بدیم که در سال 1112 کفتیم که یک فقیر کاملاً اسلامی بود با حبود که با مولایان مخالف اونم به خاطر تجربیات مزدر تجربیات شهار نصبش که سره هم و مدرسه طالبی رفته بود در تبریز و بقیه یه مساق با روحانی مخالفت ولی به اسلام گفت که اعتقاد کامل داد ولی داریم میریم قدم ببینیم این چونه تحولات فکرش رو به اونجا رسانید که دوارد سال بعد صورت واضح و روشن هجاب را برای زن موجب که سراندگی زن جامعه حساب کرد هجاب با تمام بود باجرده بود کشفی در اون تاریخ شدم از تاریخ 1620 در تمام به سلاح جنبهای جامعه مبارزه کرد با افسران نظامیان مبارزه کرد تاوی به نام افسران ما نوشت با وکلا مبارزه کرد با وزرای مملکت با نخست وزیران با پاشا مبارزه کرد نوشت با حزب توده مطلب نوشت و مسائلی از این قبیل خواهد. امیدوارم که فرصتی فرصت باشه تا بنده بتوانم اینها رو به سمع دوستان گرامییم به امل یک کوچکی از پیمان برداشتم نشون بدم در که تحولککسدی تا کجا بود ببینید همون کسی که در سال 311 از اسلام با کرده و علم رو در مقابل اسلام با فرض کرده حالا در سال تیمان 1320 تیر ماه هزار و سال هفته شما ببینید چه میگوید؟ میگوید که بشر هزاران سال پیش با شده ابتدا مانند جا می زیست. سپس سپسن افزار کار پرداخته سپس به آتشی بر کشاورزی پردااخه سپس چهار پایان را رام کرده سپس به گار سنگی رسیده سپس به مرحله کشف فلز رسیده. آنکنان مطالعه داشتیم مرد که اغلب علوم رو دیارش بود کاملا بررسی کرده بود و به اون رسیده بود در سال کسانی تمام عقاید بیگان جامعه ما قبل از مشروطه از ملکم خان گرفتند از جمال الدین اشدوابادی گرفتند طالبوفا زاده و جواخان و کرمانی و بزرگانی که حرفهای درست ده بودند و مبارزه کرده بودند در ما مشغنده بود ما کسانی که در مورد عبد در مورد متأخیر دازن مطابقه میشن که گفته هایش بوی سخن اون بزرگان رو میدهد همه اینا تجربه ها مختلفی تاریخ های خیلی مفصلی در مورد ایران نوشته خدمت بیرده کسری در مورد مطالب زیادی نوشته در کزشتی مختلفن ونی بعضی بختار به اصلاح بیاهه میده بازشان که حرف فاید بیشتر از کس که از در این کار فوکان تاریخ جزاس گسوی که سوی اسکردم یک اسلام هم قرآن رو میپذیره دریکان به همان ایفی که فقها هم میگن هم برهم میپزیره به همان ایفی که مسلمانان اعتقاد دارند اون شیع رو میپذیره و بد دستین شیع روپذیرره این مویت کسبویس این ک در سال ۱۱۲. در پیمان شماره یا اردیشت 1970 می نویسد که درباره قرآن پیمبر یکی از بوزونی های اسم که کتابی از خود پیغمبر آن در دست و این است که مننیاد آن همیشه استار بر خب، ملاحظه می کنیم که در کتاب رو کتاب خداوند نمی داند. کتاب رو قرآن رو محمد می داند. این فردی داره فقه با مردم با مردم سلمون ها و شیعیان در سال 1340 سال بعد در نشیه پیمان حال سه شماره یک بحمن اون سال من اون سال در صفحه هفتان یاداش کردم می جهانیان را به دین نومی نیست دین نچه که که نبونه او گردن چون این چیزی چونه که نبونه گردن ببینید چون نازم به زیر در مورد اسلام در ادامه تایید تأیید قرآن نیست در همان نمیسد که آن که همه پیغمبران بر سر آن آده و نامه در آخری آن یعنی منظور قرآن اصل ما امروز هم همان خواهد تغییری در دین نباید باشه ما تفشل بررسیم کنیم ادران را منوز فساد و خوافات میداره و میخواهد که دین را داد بکنه باز یک وقت در پیمان سال سوم شماره ده در ماه 1615 درباره تایید مطلب اینکه جمله‌های قرآن استوار و شیباست، راست و راسته و زیباش خواهیم رسید که کتاب‌های بعدی و مینیسات اون اشتباهات فراوانی داره قرآن دست پیغمبره و چون پیغمبرم حصیتی بود مثل ما میتونست بکنه که کرده میتونه کلی میتونم به اون کسری پیغمبر رو پیغمبر را آنشونان که میگوید رابطه خداست با خداستی که خدا رو میبینه که شخص به عنوان مقدس باشه که در باره پیغمبر معتقده که هر انسونه پیغمبر باشه کسی اگر اصلاح کرد بود شرایطش رو خواهم ند خداوند هم چون به خدا میده خداوند هم نوت گای از ارسلان که کمکش میکنه و به بهیم گاهی میگه وری فرشته تا شخص بیتونه جامعه رو بنابراین ما یک پیزر ده پیغمبر 124 هزار پیغمبر نیست از دیگر سمید از دیده که هر کسی اصلاحگراز پیغمبر میتونه باشه و خدا بابوس ما در سال 1013 برمی گردیم تا اوشن بکنیم که تحبتش که بوده دوباره خواهم گشت به این در مغمبر گفتم از اون باره. ببینید که می نفسد در سال ششمه شماره نهوم آزرماه 2019 می خوانیم خدا کسی را در دین جایگاهی نیست همون سخنانی که عرض کردم این مرحله رسیده ان نظر پیدایی روز خدا دی را در دین جایگاهی نیست و هرگز نتوان عام کسی را امبارز با دیگران آم خدا همراه کرد مسخره میکنه انتقاد میکنه فریاد میکشه با خرافات این شیعیان این مسلمانان برای مقدسین خودش واقعا بت میکنن همه رو به بابه انتقاد گیره درباره ادعای پیغمبری خود که میگونن که دعای پیغمبری کرده مطبقه نیستند که این پیغمبری با تفکرات کسی بر اساس اقاید است نه اون پیغمبری که میگن از طرف خدا مبعوث میشه و میره هر را و از اونجا با خدا وصلت پیدا میکنه اصولا کسی تا روز در باره کسیوی مطالعه نکرده تا این مرد چگونه رفت چگونه افکارش در اوز شد ولی به کردم، مدام مطالعه بود از کتاب های از کتاب های اجتماعی مطالعه کرده بود و میشناه در جای جای نوشته هاش و گفته هاش ما میبینیم اشار کنه به این کتاب ها در سال 1396 سال بعد در پیغمبری ببینید گفت جز خدا کسی را در آیگاه نیست در باره دعای پیغمبری خیشنیز میدن خدمت را در همون نشیه در همون تاریخ کیش ها در هر باره موز آموزاک های بیخرانه داشتن بیخردانه داشتن آموزایی یا دهنده آموزهنده گه در اینجا تو دی ببینیم که جووری تا دوعد دی که و درباره مردم را آمیقا ها یعنی از حقایق دور ام می اینها که ها را همچون یک فرمان روای خامه پندا دین را آینی بحر پرستش به اون مارند به پرستش نیست شخص بید. کسوی اطاعت درستکاری میدونه پیروان دینها ها که خدا را همچون یک فرمان دارست دین را جزائی نی بهره پرستش نمی نمیشه ما برانگیختگان یعنی پیغمبر نیست از گو آفرینش بالات دیگران دانستند پیغمبر بالاتر از از دیگه پیغمبر مردم عادی است که خود کسبی هم جلد و برمیگرده هم من دارم اصلاح کراهی من هم پیغمبرم و همیش از گوهر و آفرینش بالاتران دانسته مثلا متحدان دین و آن را که کار راه و راه کار یک برنگیخ ندانسته و چنین میپنده یک برانگیخته چون خواست و ناخدگر هرچه تواند که هرچی تواند هر گفت مانان برانگیخته یک قانونگزار خودگری است ها و کدارهای او جایی شوید چرانیش ما ببینید یک بیک یک پیغمبر هم این نیرو چرا نیست این عقیده ای کسردیه در این تاریخ در پیمان با سند و ادامه می که نشانی غمبری نیست از دیدگاه معامی که باید مرد زندگردانه سک شطور در بیاورد کنوران سخن گوید از ها که قابل دید نیست از نو آگاهی دهد از میان انگشت چشمه روان گرد و به کارهای موونه برخیزد این نیست به ادامه میدهد، همه گرفت کار مسلمانان است در کتاب صد نتوانستنی یاد میکنند. کارهایی که نمیشه انجام. از قطی اینکه ماه را دونیم گردانید، از انگشتانش چشم روان ساخت از سنگ بیرون بیگوند که آسمان به خدا رفت آفتاب را پس از فرو رفتن گردانید و سخن گفت از آینده آگاهی داد در جایی که در قرآن آن پاتمردره پیغمبر را میگه از نتوانستانی یعنی موجز بیزاره نموده و هر زندگی چون این کاری از او تلبیدن آره گفته نتوانم خب ببینید دید کسی در مورد پیغمبر چه یک آدم عادی عادیست نیست که تلاش میکند برای راه جامعه و که این آدم عادی که چون این میکنه چون با معتقده خود او را همراه خواهد کرد. جسری پیغمبر به عنوان اصلاح طلب شمونده و می نمیزه در ترید کسانی می گویند یک برانگیخته یک, یک را چگونه می توان شنا می گوییم ببینید چی نیگه دیگر چیزها را چش ناسید یک دانشمن را چگونه ناسید یک پزشک را چش ناسید ناسی؟ برابری مسئله فوقنادهی نیگه یک انسان است. همه دیگه در مورد آمبار در مورد اسلام مطالبی بیان کرده حالا در سال 70 دوست داشت که سرفسی شیع فقیه شیعه بود و اشاره شم باز در این مورد هم تقابلت قریبی انجام داده چون تو نسبان که در اسفن ماه 312 در پیزان شماره هستوم از سال یکم از سال یکم امایت از تشکیر ایرانیان می نویشد بگید چه افتر کنه دن تاریخ 1113 هماشی ایرانیان چون اومدیان و عباسیان دستاویز خیشابندی بر اسلام به خلافت نشست و علبیان را که به نزدیکتر از آنان بودم و در پارسایی و داندی هم بردتری داشتند سخت میازوردن ایرانیان این بیدادگری را برنتاخته هواداری از علبیان و این بود که شیعیگری به شیعیگری معروف کردیدند و در حمایت از اسلام اسلام نیز باز میگوید که جهان هر حالی را که پیدا کند و در ایران هر گناه که رو دهد سیزده قرن بیشتر که ایران این به دین اسلام بوده تراموش نخواهد شد یعنی بیش که این مملکت در این ملت افراد این انسان دین اسلام رو تراموش نخواهند کرد که ما خوش بود و هر حال بیش این سرازی ایران است که قرنهای درازی با کنین پاکی بزار بودند پاک میگه ولی مباحث بعدی خواهیم گفت که چه اندازه از دین فساد فساد آلود میشناس این رو نه خود دین رو, دین رو بل بلکه تواهیلی اضافه شده مسائلی اضافه شده ملوهای این افراد دیگر مسائلی رو به خاطر دین رو آلوده ساختن کسری که داخش به صلاح زیه دین بود دین رو از آلودگی با بکنه جدا بکنه بود برحال بنده سبر میکنم که داره 22 همه هم شده در فرصت آینده در بخش هم من این بخش رو ادامه داد تا برسیم ببینیم که کسدی چه بود و چگونه زندگی کرد و چگونه مرد و چگونه مبارد روز به ایزان خوش امیدوارم که در برنامه از هم شنونده و بیننده سخنان من باشید